Up, O, up O! وانی فارسی بناوی خواوندی بخشنده و دلوان برزن و برنامه وانی فارسی سلام تن لیبی امکاتتان بش حفته یک بسر نشداری باو کی رامین تیپریو سعید امر چوا سردانی باو کی رامین دکات او ب محمد ګوت ک حالي باو کی رامین باشتربو لوانی او ان سبی یاندوسبی برونه لبر او محمد ټلیفون بو رامین دکاتو لمبارو قسیله گلدکات سکایه خوری ممکنو سره تاسو وښو دستاویزن وکړ خانواده خانواده به مالا خانواده ات خانواده ات به مالا کت آنها میروند آنها میروند اوان دچن همه خوبند همه خوبند همو باشن فردا فردا سبی پس فردا پس فردا بی الان الان است به راحتی به راحتی او راه می‌رود او راه می‌رود او برگاده دروات دکتر رازوی دکتر رازوی دکتر رازوی جراح جراح نجدر نجدر. بسیار خوب، بسیار خوب، ظربش، جراحان ایرانی، جراحان ایرانی، نجدار ایرانیکن درست است، درست است، درسته بیمارستان، بیمارستان، نخشخن، بیمارستان ها، بیمارستان ها نخوشخانکن جراحان جراحان نجدارن مردم مردم خلق کشور کشور ولات کشورها کشورها ولاتن همسایه همسایه دروسه عملی جراحی عمل جراحی نجدری برای برای بو آنها می آیند آنها می آیند وان دین راستی راستی تو می تو می روی تو ده چی؟ من می من می رویم من, من ده با خانواده ام با خانواده ام. لگال به نمالاکم. چند روز. چند روز. چند روش. تو میمانی. تو میمانی. تو دمینی هوا. تقریبا. تقریبا. نزیک با. من میمانم. من میمانم. من دمین موه. هفته، هفته، هفته، یک هفته، یک هفته، یک هفته. تو برمیگردی تو برمیگردی تو دگری وا؟ من بار میگردم، من بار میگردم، من دگری موا. کی، کی، کی. جامع. جمعه حینی چون چون چونکا خیلی خیلی زور کار دارم کار دارم کرم یه محمد جمار مبایلک رامین وردگره. رامین ولامی اداته و لگل محمد دستدکه با احوال پرسی. دوی چا محمد لرامین دا خانوادات چطورند؟ خانوادات چطورند؟ همه خوبند. آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند. همه خوبند. آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند. الان پدرت چطور است؟ خوب است. الان پدرت چطور است؟ خوب است. بله، خیلی خوب است. او به راحتی راه می رود. دکتر رزوی جراح بسیار خوبی است؟ بله. خیلی خوب است. او به راحتی راه می رود. دکتر رزوی جراح بسیار خوبی است. بله. جراحان ایرانی بسیار خوبند. بله. جراحان ایرانی بسیار خوبند. درست است. ایران بیمارستان ها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران میآیند. درست است: ایران بیمارستان ها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند. راستی تو هم به شیراز میرو؟ راستی تو هم به شیراز می روی؟ بله من هم با خانواده هم به شیراز میروم. بله. من هم با خان آدم به شیراز میروم. چند روز در شیراز میمانانی؟ چند روز در شیراز میمانانی؟ تقریبا یک هفته تقریبا یک هفته.کی به تهران برمیگردی؟ کی به تهران برمیگردی؟ جمه به تهران برمیگردم؟ برمی چون در اینجا خیلی کار دارم. جمعه به تهران برمیگردم؟ چون در اینجا خیلی کار دارم اشتاش دوباره جواد اقلين لمتواجه نوان محمد رامين باور ايراني كرديوان خانواده چطورند؟ اوانی مالا و چونن؟ همه خوبند آنها فردا یا پس فردا به شیراز میروند همو باشند اوان سبی یا دو سبی دچن با شیراز الان پدرت چطور است؟ خوب است؟ استباو کچونه باشه بله خیلی خوب است او به راحتی راه میرود دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است بله زور باشه او به حسانی برا گاده دروات. دکتر ارازوی نجدر کی زور باشه؟ بله. جراحان ایرانی بسیار خوبند. بله. نجدر ایرانی یکان زور باشند. درست است. ایران بیمارستان ها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند. راسته. ایران نخوشخانو نجداری باشی هیو خلکی ولاتانی دراسه با کاری نجداری رول ایران دکن. راستی تو هم به شیراز میروی؟ راستی؟ توش ده چی با شیراز؟ بله من هم با خانواده هم به شیراز می روم بله منش لگل با نمالکم ده چند با شیراز؟ چند روز در شیراز می مانی؟ چند روز لشیراز ده می تقریبا یک هفته. نزیک به یک هفته کی به تهران برمیگردی کی د گرهه و بوتران به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم رژ حینی د گه معوترن چونکه مرزان امزاریش جوی لمو توی جراد گرین بلا هم بیور گرانی کردی. چطورند؟ همه خوبند. آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند.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 من هم با خانوادهام به شیراز می رویم. چند روز در شیراز می مانی؟ تقریباً یک هفته. کی به تهران بر می گردی؟ جمعه به تهران بر می گردم. چون در اینجا خیلی کار دارم. لیرده عزیزان ده گینه کتایی برنامه امروی فارسی و تا به گشنوی که دیکه همولایکتان به خواهی دلو بیرین.